بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و خاتم النبیین و آله و صحبه اجمعین اما بعد مروري قائم كتابة الحادة دكتور مرور قائم داشت بر مباحثی از کتاب الحاد دکتور صالح السندی از اساطی دانشگاه مدینه با متخصص عقیده فقط هدفم مرور مراجعه هسینی هدفم ان درس علمی و اون دوره علمی نیست قد بحث مراجعه هسینی مراجعه دوری بر کتاب از بار مذاکره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا خب إن جاء معلف الله هفزش بكنا وحمد ستعيش الله جل وعلا شرومي كنا شهدات بار الله جل وعلا وشهدات بار نبوبة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ودرود صلوات مفرس بار ختم النبيين ودرود بار صحابه بار رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن الأدلة العقلية والنقلية والحس والفطرة كلها شاهدة بأن ربنا تبارك وتعالى هو المتفرد في ربوبيته والمتوحد في أولوبيته عز سلطانه وعظم جلائه وعلى شأنه ونفذ أمره وكمل بهاؤه خب الان اینجا مقدمه را شروع میکنه معلف حفظه الله میگه که ها بر الله جل وعلا عدله وقتی گفت و براهین و اون دلائلی که الله بزاشته بر الله جل وعلا مختلف متفاوته جوی ما دلیل عقلی داریم جوی ما دلیل نقلی داریم یعنی از نقل از روایت از اون سخنان الله جل وعلا چه در قرآن و چه در کتاب همچون تورات و انجیل و الشيء از اون احاديثی که از رسول الله صلی الله علیه دليل دليل و سلم به ما رسیده است ما بین ادله است ادله عقلی ادله نقلی و جدا حس انسان شامل دو قسمته یک قسمش اون الله جل و در ذات ما داده من وقتی که از شرع به من میاد دلیلی از قرآن از سنت به من میاد من میتونم با عقل خودم تحلیلش بکنم با عقل خودم میتونم اون رو درک بکنم اون دلیلو. خب این فترته که میتونه تشخیص بده که این حرف درسته و یا درست نیست یه چیزی در ذات ما هست یک حس درک خب یه قسمتش اینه یه قسمتش اون حس نیازه اون حس نیاز از اون چیزی که الله جل و از نیازمندی در ذات ما قرار داده به خاطر اون نقصی که در ما هست و هر کدوم از ما نقصی که داریم خب نیاز داریم که اون نقص جبران بشه نیاز داریم که یک کسی پشت و پناه ما باشه یک کسی بیا دست ما رو بگیره خب اینجا معلف الله حفظش کنه، این ادله ها رو میاره فقط اشاره بهش میکنه حالا اون نمونه مثال هایی که برای این مطلب زده میشه سر جای خودشه که اینجا جای بحثش نیست که مثلا بفرض ما بخوام مثال بزنیم دلیل عقلی یا دلیل نقلی و الی آخر خب اینا همه دلایلن براہینن که به یا الله جل وعلا دلالت دارن اون کسی که یگانه و یکتا هست در اون خالقیتش در اون صفاتش در پروردگاریش الله خالق یکتا است الله جل وعلا خالق یکتا است الله جل وعلا افریدگار عدلله زیادی را گذاشته بر اون سلطان و جبروتش بر اون ملک و از اون اقتدارش بر خلقش از اون توانمندیش الله جل وعده با کلبه کن و یکون کرده و این مخلوقات را افریده یک مطلبی در زمن براه که بحثش میشه مثلا ما برهان رفتی که من کفته میشه یا دلیل درسته که از زاویه مثلا ما از قرآن میگیریم یا از سنت میگیریم ولی خب ولی همون دلیل که از سنت گرفته میشه یا از قران گرفته میشه خب یک بحث و گفتگوی عقلی هست یک بحث و گفتگوی عقلی الله جل و علا بخواد ما عقل خودمون رو به کار بگیریم بر یگانگیش ما برسیم به یگانگی الله جل و علا در خلق آفریدهایش در خلق و آفرینش مثلا الله جل و علا مثال میزنه مثلا در قران الله جل و علا میگه ان خلقوا من غیر ام هم الخالقون الان ما سن این آیه رو به سخنی را بزنیم از یک اندیشمندی از یک مفکری از هر کسی خب بیان این را در واقع عملی این تجزیحش بکنیم این حرف و سخن را بیان بررسیش بکنیم ببینیم چی میخواد بگه اینجا این گفتار دلالت برچی میده چه برهانی در این هست خب ام خول خوب من غیرشی یه قسمت اول آیا احتمال هست که انسان از عدم آفریده بشه یعنی یه چیزی پوچی؟ یه هیچ چیزی رو به وجود بیاره یعنی چیزی نباشه یه چیزی وجود نداشته باشه مثلا کارخانه ماشین سازی نباشه ماشین تولید بشه آیا امکانش هست که ماشین تولید بشه و کارخانه ماشین سازی نباشه یا کارخانه نباشه یا حیوان نباشه مثلا شیرش وجود داشته باشه و الی آخر آیا امکان هست یک چیزی از عدم به وجود بیاد یعنی هیچی نباشه بعد اون هیچ بیاد یک چیزی از خودش به جابه چطور میتونه از خودش چیزی به بذاره؟ میگه میشه میگه میتونه اون عدم از خودش اراده داشته باشه و عدم اراده نداره خب این قسمت اول احتمال هست این که اصلا شما آدمی پوچی شما رو وجود ورده باشه؟ نه اصلا محاله میگه میشه،, میشه چشم با این دقتش گوش با این زیبایی و با این محکمیش و با این کارایش کوشت داره صدا را قشنگ تحلیل میکنه میشنوه به مغز بیوره بعد اون سخنها تحلیل میشه بعد اون بر سر زبان جاریش میکنه و این زبان طوره میچرخه که صداها رو تولید بکنه بیش از سی تا صدا تولید میکنه حرف از این زبان از این مخارج میگه میشه همینطوری مثلا این خلقت آفرینش از عدم باشه خب بس این احتمال اولش احتمال اولی که اصلا محاله یک عدمی بیاد این جسم زیبا را و این زیبایی و این محکمینی بیافرینه. ام من غیرشه ام هم خلق من غیر شيء هم هو الخالق. طب و لك قسمت دومش. آیا احتمال داره انسان اصلا خودش خالق خودش باشه؟ ناگید ما تجزیه تحلیل باید بکنیم با عقل و درک خودمون، شوری که الله در ما گذاشته، اون حس و اون فترتی که ما داریم. آیا احتمال داره مثلا یکی از ما آفریدگار باشه خودش؟ آفریدگار خودش مثلا خودش باشه. مثلا من بشم آفریدگار خودم. خودم خودم خودممو بیافرینم. آیا میتونم آفریدگار باشم؟ نه نمیتونم آفريدگار باشم چرا نمیتونم چون من قبل از وجود خودم اراده ای نداشتم چطور میتونم خودم رو بسازم باید من یه کسی بوده باشم یا اراده ای داشته باشم که بتونم خودم رو خلقات بکنم بیافرینم پس احتمال اینکه عدم باشم نیست از عدم به وجود اومده باشم نیست چون عدم نمیتونه چیزی تولید بکنه پوچ نمیتونه چیزی تولید بکنه آیا احتمال دوم هست که من خودم آفريدگار خودم باشم نه نمیتونم آفريدگار خودم باشم چرا چون من قبل از وجود خودم اراده‌ای نداشتم کسی که اراده نداره چطور میتونه یه چیزی را بیافرینه پس گزینه سوم باقی میمونه فقط اونم این که باید یک آفریدگاری غیر از خلق و این مخلوقات باشه که بتونه این مخلوقات را بیافرینه چیزی جز این نیست باید یک آفریدگاری باشه که این مخلوقات را آفریده باشه خب اینا ادله ها هستن یعنی ادله ها بررسی میشه حالا من گفتم هدفمون این نیست که این دلایل را کلا تک تک بررسی رسیده چون اور به جوی خودش گفتم هدف مرور بر این کتابه و اون مسائلی که در این کتاب میده خب اینجا شروع میکنه مؤلف بعد از اینکه ادله ها و براہین حسن برای یگانگی الله جل و اعلی میگه است و عرشه یدبر امر عباده الملك الحق قیوم بنفسه مقیم لغیره غنی عن كل ما سوا و هو كل ما سواه فقیر الیه الله بعد از اینکه مخلوقات رامین عارفه انت خاب میکنه را اینکه برخراز اون باشه و خاطی با مخلوقاتش نشه، مخلوقات چیزی نیستن. الله جل و این مخلوقاتی که آفریده یک ذره بیش نیستن. یعنی مخلوقه عاجزه، فقیره، کوچه که الله جل و علاّه از عظمتش میگه در پرانش بهش میکنه و من قدر الله حق قدر وقتی که یاد میکنه که بندگان قدرشو ندونستن چی میگه؟ میگه که و السماوات وماطیاتُم بیامین آسمانها در کف دست الله اینی چی وقتی که الله تح میبرد از بندگانش. و خشم و غذب و ارزیده بقاطر عسیان و سرپیچی بندگان و اون مخلوقات را که در روز قیامت هزارشون میکنه الله خطاب اونا بگیر لمن الملک اليوم لله الواحد القحار شما مقهولید یعنی شما مغلوبید الله که الله که و قاهر الله جل بلا آفره دواره الله جل وعلا فالخلوقات چیزی نیستن در مقابل الله جل وعلا مخلوقان یعنی الله بگه کن فیکون میشه بخواد یک کسی رو به وجود میاره بخواد یک کسی رو از دنیا میبره و کسی نمیتونه در خلق و افرینش دخالت بکنه یوت به راه عبادت تدبیر امور بندگان به الله جل وعلا رزق روزی کی تعیین میکنه که کی کجایی باشه من کجایی باشم دیگری کجایی باشه الله جل وعلا تعیین میکنه بر اون اساس حکمتی که میداند از اون علم اساوقه که داره کلیت ادعافت میکنه تو کار الله جل وعلا الملك الحق الله جل وعلا مالك الله جل وعلا مالك منو شما ما مملوکی يعني ما در ملك الله جل وعلا وقتی که ما را به دنیا میاره ما را میافرینه با در ما میدمه و وقتی که هم بخواد این روح سنو دستینو میده که ملائکه بکشن و بمیره مال خودش کسی میتونه در خلطه فر الله دخالت بکنه کسی میتونه اصلا مانع بشه از مردن خودش فرعون deity خدایی میگاد مرد نه مرد هلاک شد مرد مرد نیست بر اینکه خدایی باشه باید اون خدای پایدار باشه نه اون خدا بمیره از دنیا بره خدا باید باشه بوده باشه و باشه که مخلوقات را در آینده هم مدیریت بکنه یک مخلوق عاجز که میمیره به درد خدایی نمیخوره به درد نمیخوره پس الله جل وعلا قایم بنفس خودش الله نیازمند کسی نیست رسول الله سال که صحابه جلویی میکنه یارا رسول الله شیطان میاد بس و میکنه تو رو ترکی وجود تو بوده پدرمون تاب میلسیم با آدم بعد میرسیم با خدا و میگه که نه این از ایمانتونه شیطان میخواد بس بساتون بکنه بگید آمانتو بیله ما ایمان بودیم با بو جل الله جللا و اون الله ای قادر دگار ماست این بسپاسهای شیطانی بدرهاو بکنی بس Allah جللا و علاه حتما که در روایت دگار رسول الله سال الله بهش میفرمایه کان الله ولم يکم قبل او شيء الله بوده و المخلوقی قبل ذللا ناودن الله قادر دگار ما را یک آفریدگاری آفریده که گانه است و بر وجود خودش یکتایی خودش به انبرون ساده که ما را رهنمود به سازنده سوی اون الله یگانه. مقیمون لغیری هر مخلووط که آفریده شده الله آفریدگارش هست اخلوبه باید ببینه کسی نبوده تا والک ن مورده ختابه به اشرف خلقش محمد ممس و نه میفرماید الله جللب و این هم ميتون. تو باید بمییم همه باید بمیرم غنی اون انکل ماسیا او و كل ما سواه و هفه الله جل و علا غني الله آزي. الله سامده. الله واحد الله الصمد. الله سامده. سامده محتاج نیست محتاج هيچي كه از مخلوقات رها مينگوف. لم يلد و نم يولد و نم يكله و گفون. حدث شريك داره. نه فرزندی داره. داره. نه همسری داره. الله مي کسی نیست كه بخواد يك خدمتگذاری یک يك خدمت یک كاري، يك فرزندی اصلاش داشته باشه كه بيا تياريش بده. الله جلاله علا کامله در سفاتش و در اوصافی که در الله جل و علا کامله و هیچ نقصی در اون سفاتش نیست در اون آفریدگاریش الله جل, الله جل ربع سلحاده. ربع سلحاده. ربع سلحاده. و علا محتاج کسی نیست بندگان که محتاجن و کل ما و فقیرون ایله همه بندگان اخیرا به درگاه الهیه اسأله من به السماوات و الارض اون کسانی که در آسمانه که نیک بریز زمینه نازل الله جل و علا میطلب شما نگو که نیک بریز زمین فراموشیال حاده نفراتش شو نگو که زمین آنها یک دین و دیناتی دارن و یک خدای را میفرسته حالا چه اون کابش، چه اون کسی که ایسا را صدا میزنه و یا اون کسی که در قبرها خوابیده و ایلواخر اصلا با عدیانت ها چقدر ما ملحد داریم که کسا خدایی را قبول نداره یعنی وجود خدا را قبول نداره و چقدر داریم از اون کسانی که خدایی را قبول دارن چقدر داریم از اونهایی که بر روی این زمین هستن مهم فطرتشون دیگه اون ذاتشون دلیلی بوده برهانی بوده ولی اینکه باید یک دینی داشته باشن و دنبال یک دیانتی باشن و یه خدای برای خودشون انتخاب بکنن خب این چیه اون فطرت دیگه ذاته حالا درسته به کجی رفتن درسته به انحراف کشونده شدن ولی اینکه همون حسی که در اونها هست اون نیازی که در خودشون احساس میکنه با اون دیانت شما دو میلیارد مسلمان دارید دو میلیارد نصرانی و مسیحی دارید حالا یکی از دیگری بیشتر به کمتر با تفاوتی 100 میلیون و 200 میلیون خب الان 6.7 میلیارد 4 میلیارد اسمخرید دو تا دیانت شدهن حالا بعد از اونها بودایی بوده ها و دیگه هایی که روی زمینه ملحدین چی اون هایی که خدا رو قبول ندارن باور ندارن چه قدری از اون هایی که در خودشون احساس توهی یا بی‌نیازی نسبت به خالقشون افرادی بهشون میکنه خب پس یکی از دلایل تا همون دلیل فطرتمون اون سوالی که بندگان از الله میکنن و رجوع به الله نمیبرن کل یوم هو فی شان یغفر و یفرج کربا الله جل و علا هست که کناهان مندگانشون میویخشون میامورز گرفتاری هارشون رو برطرف میکنه و یا و عانیه و یا مصر و ضعیفه و کسی و یوغن فقیره الله جل و علا غمی برطرف میکنه یا کسی را از اصارت نجات میده یا ضعیفی محتاجی را نصرت میده کمکش میکنه اون کسی که ملیزی داره شفاش میده و کسی که پوله الله جل و علا میده و در رزق روزی باز میکنه. حاجتی داره تو بذارشته، به و اون اومریزید، اون دردت، اون اسارت، این حاجت رو داره تو اینکه روح الله بیاری و ازش مدد بکلابی. یومیتو و و الله جل وعلا علاه، میر بدارد، و صادقات ماندی بدارد. یو و یهدي، ادایات امروایی و یسلب آخرين. به یکسروزی میده، نعمت الله جل عزت میده خاری و زلات و یرفع اقوام من و یضع اخرین اقوام ير الله بعلم یری اعماله الله جل وعلا با این رزق نابودشون میکنه مثل فرعون قومش یمینه جل جلاله ملء لا یبيضها نفاق الله جل دستش دستاشوره هر چه قدم بده کم نمیشاره از اون نعمت ها و از اون روزی هایی که به دستشه همونطور که رسول الله صلی علیه و سلم فرمودن که الله جل وعلا میگه اگر همه بندگان چند بشن در یک سرزمینی همه من با اللہ بخوان جن و انس و تمامی مخلیقاتی که آفریده شدن. همه هم یک جا الله را صدا بزنه. الله اکبر حزمت الله را بین. همه یک جا صدا بزنن. آبالاله ها من این حاجت دارم دیگری بود. الله مستودع دیگه من حاجت دیگری رو دارم الله جل وعلا صدا باش خاطی نمیشه صدای اینو به جاش میشنوه صدای اونو به جاش میشنوه حاجت اون رو به جاش استجابت می‌کنه و حاجت این رو به جاش استجابت می‌کنه هیچ کدوم نه در برآورده کردن نه در شنیدن حاجتشو الله جل وعلا اون چه کمال سمعه کمال علم الله جل وعلا به مخلوقاتش چقد الله جل وعلا عزینا صدا ویزیری صدا میشنوه خب زبان داده که اصلا باش حرف بزنی سبان به الدعاء كلاس بالنيات بلام بكل إبراهيم الله كما كان كون ريم وينعم على قوم ويسلب نعمته على آخرين يعز قوما ويذل آخرين ويرفع قوما يضع آخرين يمينهم ما ألا يغدوها نفخا صحة الليل والنهار الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي هو ليس فوقه شيء وإن جد رياض منصفات الله جل وعلا الله عبده وده كسب هذا الله جل وعلا لنا دهسه قبلو شي قبل تسن الله علا حسين بوده والاخر الذي ليس بعده شي الله قبل بقى اخره يعني بعد از کسی كثي نفهمات خدا یک تاسیگانه یگانه از بوده و خواهد بود و ظهر الذي ليس فوقه شي الله جل وعلا ظاهر مباينه از خلقه یعنی مخلوقات نه داخل الله ونا آخر ديك آخر ديك آخر ديك آخر الله جل وعلا و نادر خارج اخری ففریده کرده الله جل و علا و بعدن درش فرو رفته مخلوقات نارس تر از اونن كالله جل وعلا دونوا حاجز الله يجزاك خيرا ان حديثه فقط درس بكم بنيارين فرودي الرسول صلى الله عليه وسلم زمانه الى معراج الافتان خب وملاقته الله جل وعلا على دره سموها افتم الصحابه سالوا يبرسن گفتن ان الله جل وعلا الرديدين فبدن حجاب ونور اللي بيننا الله جل وعلا حجاب يا سنور اذا شو نوري اثبت وجهش بچه الله جل و صورت الله جل و اعلی نوری از ذات الله از اون پرده عبور بکنه تمامی مخلوقاتش آتش میگیرن نابود میشه الله اکبر عزمت الله رجلا و بودی. یک نورش مخلوقات رو نابود میکنه مخلوقات چیزی نیستن در مقابل الله جل و الله جل و از ظاهره زاهره با بائن از خلقش نمیتونید بری تو دنیا دنبالش بگردی بگید بگی من آقا اینجا مدرک دارم این گاوه خداست یا این سگه خداست یا این فلانی خداست نه الله جل و اعلی دنیاد الله بما ياسنا ظاهره تو این دنیا دنبالش نگرد ایمان معنا نداره زمانی که وجود داشته باشه یه یعنی جایی بدمن من از من بخواد که بیش ایمان بیارم ایمان یعنی تصدیق بر امر غیبی یعنی یک چیزی غایب از من بعد اون چیز بر وجود خودش دلایلی، براه اینی علامتهایی بذاشته با توجه از اون علامتها از من خواسته که من دست به تا به عبادت و دعا براش بلند بکنم و سر بخواهم بتلبم بذارم. از من خاصی که رو بفرستم با توجه به اون دلایل برائینی دلایل دلایل که دلایت بر اون غیب داره نه بر اون چیز محسوس اگه من امتحان معنا نداشت اگر مثلا فرض من خدا را می‌دیدم یا خدا محسوس بود خب اصلا امتحان من چه معنا داشت که امتحان معنا نداشت که من با شیطان خودم مبارزه بکنم نماز صبح بلند بشم از خوبم بزنم برم مثلا در مسجد نماز بخونم نداشت اون خدا ظاهر بود دیگه الله جل و علا چون خودش را از ما غایب ساخته ما را معمور کرده که تفکر بکنیم در وجودش و به وجودش پی ببریم از این عقل این عقلی که ما ما این خرد ازش کار بکشیم کار بگیریم برای رسیدن به الله جل وعلا وگر،, وگر نگر مجرد این چشم با دیدن که پی میبر که این خدا هست این دیگه اقامت دلیل و برهان و فرمول و نبیدونم چهار تا نظریه و نظریه پردازی نبود که انسان بیاد تحلیل بکنه و بیاد بنگره توش. معنا نداشت. به یک آب شوری مزهش کردی، چشیدی، دیدی که شوره. این امتحانش کجاست؟ امتحان وقتی که تو اون ادله‌ها را تحلیل بکنی، اون براهین، اون دلایلی که گذاشته الله جل جلاله بر وجود خودش، تو یه بررسیش بکنی و سخنانی که خسان بیرانبرانش گفتن. والباطل الیلیست منه شیء. الله جل جلاله باطل. یعنی چیزی بوده او وشید یعنی الله جل و علا به خاطرتش یعنی چیزی نیست در این کون چیزی نیست در دلت بگو زره یع خانه تلع یعنی ما چیزی چیزی دلت تو هست محاله که الله جل و علا پنهان بشه میشه نه الله تبارک و تعالی میونه از دلت دلت چی میگذره الله جل و علا الله لا اله الا الله هو العزيز الحكيم الله جل و علا عزیز حکیم صاحب با حکمتی که از خب میدونسته که چی رو کجا آب میدونه آب دهن من شور باشه یا شیرین آب چشمم شور باشه یا تلخ باشه آب گوشم همینطور هر کدوم از اینجا آبی توشه این آبها توی بدن من با هم دیگه قاطی نمیشه آب دهن من شیرینه الان بگیم اصلا بیمزه هست ولی آب چشمم شور آب اش وقتی که پایین میاد شوره چرا آب توی چش شوره آب توی گوش که وقتی که میاد با این تلخه چرا اینجا تلخ اینجا شیری اینجا شور سه تا آب متفاوت در یک صورت همهم غددا ترشوش میکنن غدده که در دهن گذاشته در چش گذاشته در گوش گذاشته چرا این تفاوت هست در این سه تا آب در یک سر تولید میشه دریا شوره مثل آب چش چرا تا گندیده نشه مایا چون اون آب پوسیده نشه برای اینکه اون مخلوقات زنده بمونن و اون آب دریا گندیده نشه الله شور قرار داده حکمتش و حکمت در این که این چشم آب شور باشه به خاطر چی به خاطر که آب زیر اون اشک ها یا اون لایه‌ای که روی این چشمه به خاطر که اون آب پایینش تبخیر نشه چون جسم هیکلی که این چش رو تشکیل داده بیشترش آبه اگر شور نبود اون لایه جلویش با اون، با اون چربی هایی که تو هم چربیش می شد هم اون چشمه آباشتر خیر میشد الله اکبر چقدر عظیم اون اللهی که میدونه چه آبی را کجا بذاره بر اساس اون حکمتی که داره اگر آب دهنه ما بود چی؟ یاد تلخ بود و آبی که تو گوشه بود تو دهنه بود اصلا مزه غذا را تو لذت ازش میگوردی؟ الله در کمال حکمتی که داره که چی را کجا بذاره؟ متع و یک خوشی هم برامون در اون نعمته قرار داده آب دهن و شیرین قرار داد خاطر اینکه انسان مزه چیزها رو بچشه بتونه بفهمه که این یا این شوره لیسه دهو بوابون فی ده الله جل و علا یک کسی نداره که مثلا دم درش بیسته بگه که تو اجازه داری صحبت بکنی تو اجازه نداری صحبت بکنی الله جل و علا سعی داره تمامی خلقش همه رو میشنبه نیاز نیست که در کسی را بری بزنی الله اکبر واذا سالك عبادي عني فاني قريب من ازيك مشتاق کجا به فردوس رو بگیری دنبال ما میگردی بدون واسطه گفت نه گفت به رسول الله صلي الله عليه وسلم قل عبادي اني قريب نه گفت واذا سالك عبادي عني فاني قريب نه گفت اني قريب گفت من ازيك مگر کسی از من پرسيد الله جل جلاله نیازا داره بي اين كه يك دم درش باشه بگه كه اجازه هست من صحبت بکنم یا نیازمو بگم الله اکبر همه رو در یک آن میشنوه و نیازی هم به یک واسطه نداره بین خودش و خلقش ولا حاجبه و یودخل علی کسی هم نیست که مثلا نماینده باشه مثلا به فرض نماینده داشته باشم بگم ای نماینده حرف منو به خدا برسون الله بدنی نیازه الله هر کدوم از مخلوقاتش درشو بزنه الله دعا و حاجتشو برآورده میکنه ولا فیوتا. وزیر و قیوتہ الله نه به وزیری نه به شهداری نه به فرمانداری نه به استاندار نه به رهبری نه به کسی که هیچ کسی نداره الله خودش رهبر کنه الله خودش خالقه کنه آفریندار کنه آفریده مخلوقات تا اینکه نیازمندیهای رو به خالق بگن مستقیم بین خودش و مخلوقاتش نمیخواد مخلوق دیگر واسطه باشه مخلوق مخلوق میخواد محتاج خودش باشه چی من برم در دیگری رو بزنم محتاج بندگی دیگر باشه پس چرا خودش شده خالق آفریدگار لازمه خالقیت و آفریدگاریش که مستقیم با اون خلقش در ارتباط باشه با اون خلقش بندگیش بکنن نه بندگی خیر از خودش رو بکنن اللهم رافید ما, ما بندی خودش باشه ولا ظهیر في و بها و و کسی كثيرانه گوزورشه که نیازمندی ما رو اون برطرف بکنه الله خودش نیاز رو بعد میکنه و گویا لا له ولی و إليه الا من بعد اگر ولی یا شفیع اگر شفاعت الله بزرعش است پیغمبرانش مثلا رو که دعای داشته باشم مثلا نابی نمیومد گفت یا برام دعا کن شفاعتی بود چشم بینا بشه بود این اجازه رو داده بود الله و الله برای کسی دعا بکنه برای کسی بکنه از الله جل و بکنه وجود الله حسابی برشتو انا که گفتم برمز دور تا نماز بکن، نماز که خوند بکوب بعد از الله تعالی خودت بگو بار الله رسول الله صلی الله علیه و آله برام دعا بکنه برام دعا می کنه خدایا بار الله دعای پیغمبرم قبول استجابت بکن استجابت بکند اینکه دینم بهم هم برنگرده آخرش هم برش نگردونه به الله جل و علا تمام دعا بگو محتاج پیغمبر نباشه محتاج مستقیم الله تعالی و باشد و نابینا قلنا ابعه فيعظف فيعرفه في حوائج عباده کسی امیس که ما <سؤال> سنبیات بناهات از الله جل و علا بیات امور بندیان ران ران و را معاشیشون رو برآوردی بکنند. الله جل و علا نیاز به کسی نداره. آحاطه با كل علما و واسع كل شیء قدرت و رحمة لا يشغله شأن عن شأن لا تغلطوا كثرة المسائل ولا يتبرموا بإلحاح الملحين لو اجتمع أول خلقه واخرهم إنسهما جنهما وقاموا في سعيدا واحدا فما سألوه فأعطى كل منهم مسألة ما نقص ذلك ما عنده ذرة واحدة كفتين يشارك يا دين بيش تمام مخلوقاتك بودان وخهان بود حمي يكجو جان بشان جن وانسيش حمي يكجو جاز الله بخهان تفوتك تفوت دار حوجاته والنياز مانديوش حمي ذلك جاي جان بشان هماز الله بخهان الله همه را اجابت بکنه یک از الله کم نمیشه الله اینکه همه حاجات ها در یک آن فسبحانه ما أعظم هو اكبارات حق الله بزرگ را عظيمه انما امره إذا اذا اراده ان يقولو فيكون فقط بقد يكون فليكون مش حجره لو كثره لاحرقت صبحات وجه منتهى من خلقه الحجابي بين الله والمخلوقاتش از نور یک پرده بشه روی وجهش مخلوقات رو عبادت خواهند للظالمين جایدین لحنت الله بر اون کسی که این نعمت ها را این کار از الله جلب و علم محروم بشه از اون نعمت رحمت الله اینه الله رب العالمین افریدگاری اداز این چیز رحمتی رو در زندگی خودمان داریم لمس میکنیم از رحمت های متفاوت از اونها آه بارانی که سرا زیر از ابرها بر روی زمین از خرشیدی گذاشته اون آه برا تنخیر رو ببر ببره به ببر بالا ببر از اون س ما رو همینطوره ها نکرد که حاجت ما رو برابرده نکنه از اون آب آشان میدنی از اون غذا غذا برامون گذاشت آب برامون گذاشت هوا برامون گذاشت نفس بکشی الله اکبر رحمان و واسعت کلشه چطور انسان به خودش اجازه بده بیاد این آفریدگاری دیگار یک تا با این همه رحماتو بخشندي ومهرباني كثيرا جد منكرش باشه الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها فمستوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله جل على إنشه آسمون الزمين را قرار داد در المدار فرشيد را قرار كل آسمان بأونسة وريدان مختلفة دار الشاسان حركوا دم دار ايك خوشی در مسیر زمین در مسیر ماه در مسیر ماه داره داره زمین میچرخه زمین داره داره خورشید میچرخه الله اکبر هیچ کدوم وابدیگریام تصادفی نمیکنه برخوردی نمیکنه از مدار خودش هم خارج نمیشه زمانش هم مشخصه باید این ساعت بره این ساعت برمیگرده چطور حساب و کتابی شده بود این خالق آفریننده و حی زیوایی که آفریده اون بشه و هو الذی مد و وجعل فیها رواسی و انهار زمین را رنج گسلش داده رود و روت خالق و برش قرار داده و من كل ثمرات جعل اززی او جنت ن هر درختی به ای را میبیید نرماده ماده داره الله اک آفریدار یکدااز مخل رو میگه ببین اگر توش نباشه میگه میشه الله میگه من این چین قرار دادم هر مخل نرماده داشته باشه یومش لیل نه شب را با روز میکوونه و روز را باشد این ف کل عات لقوم اتفکرون حلو ادداده که میگم فکر بزننی فکر کنی. فکرت، عقلت رو به کار بگیری، هیوان نشی تو هیوان تو میتونی فکر کنی الله جل بزرگ نعمت, و علا بزرگترین نعمت، خرط و درک رو در تو قرار داد بتونی باش بسازی، بتونی باش پرواز بکنی، بتونی باش کشتی خوی آب، جریان بدی با چی؟ با اون نعمت درک، فهم درک داده، فهم داده، بیا، بنگرد در اون براه این و حد الله که الله جلل برای وجود خودش قرار بده خلق السماوات بغیر عمد ترونه و ها و زمین در این فضا قرار داده به طوری که با اون ستونهایی که انسان نمی بینه ولقا في الارض رواسی انتمید بکن و بثا فيها من كل دبه کوه و داشت حیوان مخ... حیوانات مختلف در بر این زمین قرار داده منزله من السماء ما آواما با از آسمان گذاشته که فرو بیاد بر روی این زمین و بعد حلاف ها و درخت ها بروین تو ان بد نفیها من کل زوجن کریم اینچنون الله تکلیم اون گرده و نبای خوشم خوشمزه از اون انارش از اون موزش از اون ام باش خلق الله این آفرینش الهیه ف ارونی ماده خلق الذین من دونه كي هست؟ غیر از الله كي اینچنین بیا آفرینه خدای دیگه هست بلد ظالمون في طلال مبين. اون کسی که گمراه ظلمه ستم گرفت، ستم خودش کرده به عقل خودش به خودش به شعور خودش نیومده از اون نعمت استفاده بکنه بهره ببره برای رسیدن به خالقش به آفریدگارش. دیگارش مونده پوچ کسی هم نداره دست نیاز بهش بلند بکنه بندگیش بکنه آدم پوچ انسانی پوچ انسانی بی هدف هیچ هدفی نداره در زندگی خودشو حتی محتاج اون مخلوق هم منم. الله اگر در پن حاجتی کار داده همسری داشته باشه، حاضر همسر بچه ای داشته باشه، پیر شدم اون بچه نبوده من بخوره. حالا اون موله چی میخواد خدوب کنه؟ زندگی مولحی رو بیایید. خب ازدواجی وجود دارد قانون شرعی قبول نداره، و اون قربانی قانون شرع را قبول نداره. خب قانون چی هم قبول نداره دیگه اون برای نادل هایی که الله گذاشته بر وجود خودش قانع فردی کرده قبول نداره که یک برنامه ای داشته باشه بر من خردهش که تنظیم بشه در مزندگی با اون. حاجات های و نیاز مدیه مختلف خب من شدم چی؟ من شدم بیگی ملحد خدایم قبول ندارم خب شاید به مادرم تجاوز بکنم شاید به خواهرم تجاوز بکنم بعد اون، نسبت به اون بعد هم بی مسئولیتم به من چه؟ من خب بچه اومده که اومده بعد پیر میشم بعد خانه سالمندانی هم تعویل میدن کسی هم دست نیست به من سر بزنه نه پدری هست نه مادری هست پدر این مادری از کجا مادر از دین و مادر تیانات و مادر این پدره؟ وارد مادر این مواده ارسام ایراسه تعظیم خانواده است. وارو خدا نباشه چی میشه؟ هیچ خانواده نیست، کانونی نیست، ارتباطی نیست. انسان میشه یک شخص وحشی، دنبال فراره، دنبال گریزه، دنبال خودکشیه. خود خودش خطه خفه کنه. چو پوچه؟ چه شما درصد خودکشی دارید این گروه فاتوی جا پوچی در زندگی. هدف ندارن. نمیدونم ولی خصوصا خصوصا ما در بعض از جریان سیاسی این قضیه را پررنگ میبینیم جریان الحاد و حجاب چیه نمیدونم روسری چیه آتش بزن دین چیه نماز چیه پیغمبر چیه هدف نداره بذار کشته بشه بذار ببینم خب پدر مادر به دادت سوزندی دلتا کردی تو خود را به کشتن دادی اون پدر مادر بدبخت اسیر مونده در مانده با کلی غم و غصه بزرگت کردن مادر دو سال مد شیرت داده بعد میگه که مردم که مردم هدف انسان باید هدف داشته باشه انسان باید برنامه داشته باشه نمیتونه انسان بدون برنامه باشه الحاطی یعنی بی برنامه میگی الحاط یعنی بی برنامه میگی هیچ برنامه‌ای وجود نداره هیچ کسی هم نمیده که برنامه بریزه همیت روی چشم اینجا شده چشم میتونه اینجا باشه میتونه پشت سر باشه. پشت سر بود چی میشه؟ الحاد دیدی؟ الحاد به این عقل نمیده عقل میگه با چشم اینجا باشه. چشم میگه فقط سرم بود. چی میخوره میخوام باید بکنم. این دقت قالت رسول الله ﷺ فاطر السماوات. که لا وجودی فهو الشاهد و المشهود و هو الدلیل و المدلول علیه الله جل وعده تمام این اشیاه وجود من اینجا با و نشستن الله جل وعده همه این چیزها که قرار داده از این نور روشنایی این ارتباطی که من باشم باقرار کردم همه اینها عدله ها براهین بر اینکه ما مخلوقیم خوادقی ما را آفریده اینجا گذاشته که ببینیم بشنویم نمیتونیم منکر اون ذاتی باشیم که ما را باش. هو الدليل بنفسي على نفسه كما قال بعضهم كيف هو الدليل على ما هو دليله لي على كل شيء فاي دليلا طلبته طلبته عليه فوجوده اظهر منه الله جل على نياز ودليل لا داره اصلا سرده بالدليل يعني ميكبجت الله جل وعلا فيثبتا دليلا نياز ودليل داره نياز بدليل داره وقتك تتذكر داخلك احساسك نياز فيك يكفي ترى بوجوده ورده و بعد بعد در تو حاجت نیازم هم قرار داده که دست بهش بلند بکنی بعد میگی نه لو خدای وجود نداره من همطوری دستم هم بلند کردم من تیر رو بردم گفتم که یه خدای هست میگه میشه همون مسئله که ابتدا گفتم این همه هم یه خدایی دارن دارن خدای را صدا میزنن بعد میگم که نه اصلا الکی همونطوری دست خدا بلند کردن 7 میلیارد دادن به ریزوی صد دات ملحد الا به این تا وجود داشته باشه خب این همه میلیارد دادم همونطوری یه چیزی بهشون گفت که باید اینطوری بلند بکنی پدر و مادرشون یادشون دادن دو هزار نفر پدر و مادر یادشون ندیره یک میلیون 100 میلیون یک میلیارد نه که 7 هش میلیون تا آدم همهشون خدایی داشته باشن جز چهار تا خدا خدا ناباور باور سبحانه من شهادت به وحدانیت کی المخلوقات همه مخلوقات مقررا بر وحدانیت الله الكائنات. و یگانگیش و خشاعت عظمت هی همه مخلوقات قاهرات مطیع امر الله بخوشید یک ذره از مدارش خارج نمیشه. بارون الله گذاشته با رو الله بزر نباره که به امر الهی. رعد و برق و ابر و دشت و کوه و حیون برنامه یک برنامه که الله در اون گذاشته. گفتت قرت الیه همه مخلوقات محتاج به درگاه الهی اند. فلا يملك لنفس نفع ولا ضر. هیچ کدوم نمیتونه. نه سود و نه ذره به دست خودش نیست. یعنی الله جل جلاله مقدر کرده بر من که چی رو خار کنه چی به من آسیب برسونه و چی به من آسیب نرسونه مقدر کرده میتونم الان میتونم الان یعنی الله جل وعلا میتونه من حس بینایی را از من بگیره بگیره کور بکنه هیچ کس نمیتونه مانعش بشه دست الله مال خودش خودش آفریده میتونه کورش بکنه من نمیتونم اعتراض بکنم که چرا من کور شما میتونم اون کور را بینایی بهش برمی‌داره اسماء به الله جل قرار میده خب اینها دست خود بندگان نیست، منی که الان آره بینا شدم، بینا تولد شدم به دنیا آمده کی مقدر که من بینا بشه؟ این منفعت رو کی در من قرار داد؟ الله خورم شخصی که نبینا بود، به دنیا آمد، نبینا بود کی منفعت رو ازش گرفت دست خودش بود که بینا بشه به دنیا بیاد؟ نه کی او را نبینا آفری الله جل و مرگ زندگی ولا ضرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا فهو يحيي و يمیتن. الله های می‌گیرند زنده‌ می‌کنه و یعدها یوقیها یه جوری یه چیزی را الله از بین می‌بره یه چیزی رو الله باقی داره و پایدار نگه می‌داره و یحفظو و تدبرها حفظش می‌کنه بعد الله جل وعلا شؤن امورش رو برآورده می‌کنه و یصرف و یسخرها فمنه الاجاد ومنه الامداد الله جل وعلا تسخیر امور مدد و یاریش وجود و پایداریش در اصل الله جل وعلا بخاطر چه را فور می‌کنه برکه رو پر می‌کنه بخاطر برکه رو خوش می‌کنه اون آب چاه رو خوش میکنه دست خودش. مال خودش. کسی میتونه ابروها رو مثلا به جای که صبح بده مثلا به یک سمتی بیاد مثلا جاده منحرفی رو بذاره مثلا این به این سمت دارن مثلا اون ابروها رو منحرف بکنه باده این ورد به این وعد نوزه نره به طرف مثلا شمال بیاد به طرف مثلا عربستان بیاد به طرف مثلا قطب جنوب. اصل کیه این تقسیمات ابر باید به این وعد با این باد با این باد به با باد این با این, با این, با این, این تقسیمات رو کی وجود آورده؟ جزء الله الله جل و علیه هر چیزی را به جاش آفریده اهم رو در اسمان نبر روی زمین به ترده میخوا روی زمین روی زمین روتخانه قرار دار حدیث بعد الله و آیاتی یومینو خواهد به ایمان بیارن اگر بگیم ها ایمان نیبردن بگیم اسباب و وسائلی که الله جل و علیه این چیلین معقول قرار داده اف الله شک بازا شک داریده الله آفری دگار فهو اعرف منن یونکه الله لا ما عرفت ترس اني كباخه بنكارش بكونين وعوامنا يوجدت بزرگی عزمتش بزرتر از اني كما بخام انكارش بكونين وكاره بر وجودش باشه الیسي الصحه في الاذهان شيء ما اذا احتاج النهار ولا دليل ما قد روز نیاز به دليل نداره مثلا من خورشيد تو اسمان بله آ این دلیل برای اینه که الان روشنایی خورشید است الان روزه خب روزه روز نیاز به نداره الله هم جل علاعسبه ولا نیاز به دلیل نداره فوجوده سبحانه و رؤيته وقدرته اعظم من كل شيء على الإطلاق وهو اظهر لللبصائر من الشمس للابصار وابين للعقول من كل ما تعقله وتقرب وجوده فما ينكره الا مكابرا بلسانه وقلبه وعقله وفطرته كلها تكذبه الله جل جلاله قفت ادلهه بالبرهان كبر وجوده الحسن واشكارن واضحا ازو فريد اکتياسان بر النور و روشناي و روزي الله جل جلاله خالقن رز مخلوقه اگر اون وجودش دلالتی بر وجودش میده الله جل و علا وجودش نیازی به دلیلی نداره الله ظاهرتر از اونی که ظاهر ظاهرتر از اینی که ما بر وجودش دلیلی بیاریم مگر اینکه که بکنیم مگر اینکه که الحاد بکنیم مگر اینکه شکی داشته باشیم بعد وجوده خدم وقابلت وجوده الله جل وعلا، ففي الله شك، بازندر الله شك ياس إنما يكون الشك في ما تخضع وتشكل براهين، شك زمان يك، عدلها بينهان وشان، وقت يك براهينه، دلائل، فوشاًدة وشان، مشكل وشان، درك شوفه مش وشان، فأما من له في كل شيء محسوس أو معقول آية بل آيات، شاهدة بأن هو الذي لا إله إلا هو رب العالمين. فما ملؤ في كل شيء محسوس شما در هر مخلوقی یک نشانه ای بر وجود الله جل جلاله شما می خصوصا از اون بحث نرمادگی هر مخلوقی شما می این نره این ماده است درخت نخله این ماده است این نره این ماده نیاز به این نره داره یعنی باید شما برای لقاح نخله ماده از نره بردارید لقاح بکنید تا اون که ثمر بده اون درخت ماده هر درختی ما ده خب إنا متن السرّ بده نقول إن نادر شو بشه؟ إنا حاذا نشانه ودليل بار على الله جل وعلا لم يد شاهدة بأن هو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين يا من كواهم بأنك الله خلق فريد جوالي جناس فكيف يكون فيه شكونشون بس تلشاح فليس في طرق العلوم التي يعرفها البشر أكثر ولا أدل ولا أبين مما يدل على وجوده وربوته وولوئته سبحانه وتعالى هيش علمي. یعنی اگر ما بخوام به لحاظ قوتش نگاه بکنیم قوّتی که در یگانگی الله اون دلائل و براه اینی که گذاشته بر یگانگی یا الله جلاله هیچ دلیل و برهانی قوید قویدر از اون نداریم خصیصم گفتم هم بر وجودش هم بر این که الله یگانه هست در پرستشش هم در وجود هم در پرستشش الله این به جای خودش اشترا بشه شاره ان کرد این کل که أو تسمعه بأذنك وتعتبره بقلبك وكل ما نالته حاسة منك فهو دليل من عليه تبارك وتعالى. أم شما زي كده شو ما يبيني؟ مش با. هر شيء زي كده تحسش ممكن يبقى لامسد. هواي كتنفوس ممكن مزاي كميكفي. همين هو دليل بار الله. الوجود الله, الله, الله جل وعلا. عليك إن صائقة هاي مختلطة ذات قرارات. وين هالساي مختلطة متفاوت. إذا طرق العلم بالخالق سبحانه ضرورية ليس فيها أدنى شك. اینو ضرورتا در ذات بروجید الله میاد یعنی یک صانعی بوده که این چینین دهن و دندون تو تو صورت ما قرار داره تو این سر ما قرار داده. ولی در دا قالت الرسل به امم ما فی الله در این آفریده گاره که این آفریده نفس میکشی اون اکسیژنیات توی سیلئات اون سیلئات اون اکسیژن میبره توی خون بعد اون گلوبول های قرمز اون آهنی که توی خونته اون اکسیژن اومیده به معده تسختو ساز میکنه با اون اکسیژن بعد تسختو ساز بشه بعد اون انرژی تولید بشه که بتونی تو حرف بزنی بتونی تو درک بکنی تو نیاز به نفس کشیدن داری نیاز به اکسیژن داری تو را نیافرید بوده اکسیژن یعنی بدنتو نیاز به اکسیژن داره تنفس بکنی که با این اکسیژن اون غذایی که خوردی سیخت و ساز بشه اون آب اون غذا در بدنتون حاجت رو گذاش و بعد اون حاجت تو رو به اون هوا برآورده کرد اون هوا بینی هست و دهانی هست باش تنفس می‌کنی اون اکسیژن میاد توی این سینه ها تصفیه میشه. بعد دیگسید کربون رو بیرون میدی و آلایشه رو انجام میده. پالایشی بعد تو مده تو انجام میشه که تو روی پای خودت بیستی. الله اکبر چقدر این آفریدگار جنب و قشنگ و قویب و محکم این خلق رو آفریده. بعد انسان نمیخواد سر به سجدهش بذاره. بعد نمیخواد بگه بار الله من بندتم سر به سجده میذارم. سر به زلتت می میکنم بندگیت می کنم با اله حکمر آیا فریدی در اختیار من قرار دادی تخاطب هم مخاطبتن من, من لا ینبغی له ان یختار له شک ما پی ولید سبحانه بل, بل, بل, بل في اولیتی و رویتی و کمالی جل و علی في پیانبرانی که اومدن با انواع سخنانی که با دلایلی که اومدن با قوم خودشان صحبت کرده هیچ کدام از اینا با اون حرف و سخنانی شد در اون حرف و یک ذره تو نمیتونی شک بکنی که اینا حرفش و سخنشو حق بوده قرآنی که میرکنی تو اصلا یک ذره تو نمیتونی در شک داشته باشی که این سخنان از خودشون نبوده قرآن رو بخوند جن... میتونن این سخنان این موزون مرتب 14 سال قبل بیاد از یک سری معجزاتی یاد بکنه که اون موقع توانه بشر نبوده که اون درک و درک اون فهم رو داشته باشه مثلا الله جل و علا وقتی که در قران میگه الساعت الساعه وانشق القمر اخترابت الساعه قیامت نزدیک شده ما هم دونی می شده خب الان بشر رسیده به ما دوربینام گذاشته شده خب ما ماه میبینیم فرش 1460 سال قبل کی گفت این انشقاق ما. از کجا اومد و این پیغمبر اومد در این قرآنی که سخنی که از الله به ما نقل کرده از کجا آورد این که انشقاق ماهی هم وجود داره بالغيره از اون که اون عرب ها دیدن و اون در اون دوران صحابه دیدن غیر از اون قضیه چرا این قضیه شدنه ما هزار و چصدسال قدری قران ذکر شده از کجا اومد در اون دورانی که هیچ وسایدی درباره رسالت به ماه و نگارشه در ماه نبود و بعد کون هذه القضيه اظهر القضايا واوضحها الا انه وجد شذات من البشر انكروها وجدين ادله ها خیلی واضح ها شکارم الی شوزوزی یک انسانای که معروف عقل و درک درستی ندارن پیدا شدن که بیان مخالفت بکنن با این با این ضروریات با این چیزهای بدهی چیزهای بدهی رو انکار کردن الا انه وجدش و ذاغ من البشان کرد المشت... و اوضحت فتنتهم و با همو غزو مراکزن تجاه ناشایت المسجوش بابا خب این جنگ رو ما داریم از طرف ملحدی یعنی برای گمراه کردن خلصا بچه هم و مسلمان کسی با اعتقادات و فلاقم في مختل یعنی هم اخلاق را این الحاد یعنی چیزی باسم خانواده و پدر و مادر و جامع و حقوقی هیچیش اصلا قبول نداره هم جامعه رو از بین میبره هم دینات و دینداری و حرر حرر از بین میبره جزئی یعنی ش... بدولت اختلاس کن نمی دی خدایی نیست دیگه ترس از حساب و کتاب هم نیست بکوش خون بریزی سن کیف که داره خون خون میریزی هر کسی هم تماماً تر بود اونو باقیمونده خب این عاقبت الحاده دیگه خدای خدایی که نیست ما رو محاسب کنن هم نیست که یکمون بگیره روز پیامت حساب و کتابی هم نیست خب چی میشه این جامعه؟ چه جامعه یه بود اون جامعه ملحد؟ خب باید جلوی اینها بیستیم باید با اینها بجنگی با این فکر, فکر ویرانگر که جامعه رو از بین میبره انسان رو از بین میبره نابود می فلذا كان الوقوف في وجه هذه الفتنة النقراء وهذا الإرهاب الفكري الشنيع من أعظم الجهاد في سبيل الله لأنه دفع نتصائد عن الدين والدنيا جميعا إنهم دنيا دينه مخلص ما ميقران هم دينه هم آخراته هم دنياهم دنياه، دنياه. بأدبه إن فكر بجانج خصا إن فكر منحرف إن فكر كجماره بوضعه وامده جماره نبود ميكون به كرامة الإنسان رائز إنسان ميقره به وأن الإنسان بودان إنسان تغير داره من إنسان منم الله جل وعلا در من یک وجدانی گذاشته در من یک حسی گذاشته حس احترام، حس تقدیر، حس سخن خوب گفتن شرم اومده ادب با اخلاق مرم یادم داده اینها دنبال اینا با الحادشون بی خدایی که دعوت بسوی امیده این کرامت را از من بگیرم خودم لخت کنم، اوریان کنم به کسی احترام نذارم، بکشم، بپاشم دلم بخاد، قانونی هم نیست، حساب و کتابی هم نیست خدایی جون وجود نداره چه زندگی خواهد بود برحضر باشیم به فکر بچه همون باشیم آلوده نشن با این کانال ها با این تلویزیون با اون رسانه های مختلفی که به دستشونه به فکر بچه همون باشیم قرآن حلقات قرآن زنده بکنیم و اونها را در اون حلقات شرکت بدیم تا خدا باشن، بادارشون بکنین، نسیحتشون بکنین، توجهشون بکنین، به خدا بیارن، سر و سجده الله بزارن، بندگی بکنن، بندگی حسته، سر به سجده الله گذاشتن، سرگلندیه، سرگلند و موفق و پیروز و معییت باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.